شامس بغداد ششم ربیو امروز هنگام سپیددم دم از بابا زمان حلالیت طلبیدم و به افتادم پشت اسب پریدم و چهار نل تاختم به نوک تپه که رسیدم ایستادم و آخرین بار از دور به خانقا نگاه کردم ساختمان آجری محصور میان درخت های توت، به لانه پرنده مخفی میان بوته‌ها ها می چهره خسته بابا زمان، لحظه در ذهنم مثل سائغه جرقی زد و خاموش شد. میدانستم دلواپس من است، اما راستش دلیلی برای دلواپسیش نمیدیدم. تا آنجا که من میدانم باید دلواپس کسانی شد که از عشق دور میشوند نه کسانی که چهار نل به طرف عشق میتازند قاعده دهم به هر سو که میخواهی شرق غرب شمال یا جنوب برو اما هر سفری که آغاز میکنی سیاحتی به سوی درون خود بدان آنکه به درون خود سفر می کند سرانجام ارز را طی می کند نمیدانستم در قونیه چه چیزهایی در انتظارم است اما آماده در آغوش کشیدن هر سرنوشتی بودم که شهر برایم رقم زده بود با همه دشواریها و ناراحتی‌هایش قاعده یازدهم قابل میداند که زایمان بی درد نمی‌شود برای آنکه تویی نو و تازه از تو ظهور کند باید برای تحمل سختی‌ها و دردها آماده باشی شب پیش از ترک خانقاه پنجره‌های اتاقم را تا آخر باز کردم بوی تاریکی اتاق را پر کرد در نور لرزان چراغ نشستم و در حالی که به تک ای نگاه می کردم موهایم را تراشیدم. گلوله گلوله مو می ریخت روی زمین. با استره همه موهایم را از ته تراشیدم. بعد با آرامش و تک به تک ریش و سبیلم را تراشیدم از شر ابروها خلاص شدم. کارم که تمام شد صورتم را کاویدم. صورتم جوانتر شده بود و روشنتر تمام موها که رفته بود نه سنم مانده بود نه اسمم، نه جنسیتم، نه گذشته، نه آینده. تنها برای حال موه شده بودم تا ابد. به اتاق بابا زمان رفتم، و خواستم حقش را حلال کند. تا حالت جدیدم را دید گفت، می بینم سفرت از همکنون تغییرت داده، حالان که هنوز شروع نشده. قاعده دوازده عشق سفر است. مسافر این سفر، چه بخواهد چه نخواهد، از سر تا پا عوض می شود. کسی نیست که رهروه این راه شود و تغییر نکند. بابا زمان تبسمی نامحسوس کرد و مرا پیش خود خواند و قوطی مخملی به دستم داد. درون قوطی سه چیز بود. آینهی با قاب نقره‌ای، یک دستمال ابریشمی گلدوزی شده و یک شیشه کوچک بلوری گفت اینها در طی سفر کمکت میکنند هر موقع احتیاج داشتی از اینها استفاده کن اگر اعتماد به نفست متزلزل شد این آینه زیبایی درونت را به تو نشان می‌دهد اگر اعتبارت لکهدار شد این دستمال ابریشمی به تو یادآوری می کند که مهمترین چیز پاکی قلب است مرهم درون شیشه نیز زخمهای ظاهری و باطنیت را مداوا می‌کند پس از آنکه این اشیا را تک به تک نوازش کردم قوطی را بستم و از بابا زمان تشکر کردم حرفی برای گفتن نمانده بود هنگامی که پرندهها با اولین پرتوهای آفتاب چششه سردادند و قطرات شبنم از شاخه آویزان شد سوار اسبم شدم مقصدم قونیه بود خودم را به سرنوشتی که خدای قادر برایم رقم زده بود تسلیم کردم بیان که بدانم چه پیش خواهد آمد و بیان که در آرزوی دانستنش باشم با تمام نیرویم پیش رفتم